درود شنوندگان و هموطنان عزیز فرشیده نصر اللهی هستم بعد از چندی ما تاخیر و بالاخره مشکلات تکنیکی من امیدوارم حل شده باشه واقعا دلتنگی شما شنوندگان عزیز و جناب شکری بودم امیدوارم لحظات خوبی را در کنار همه شما مهربانان داشته باشیم با خبر شدیم روز چهارشنبه آقای شکری عزیز مادرشون رو در ایران دست دادن نیزای دردناک رو به آقای شکری و خانواده محترمشون تسلیت میکنیم امیدوارم سلامتی همیشه با شما باشه همکار و دوست عزیزمون یاد این مادر عزیز رو همیشه مندگار میداریم اکنون اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سمب شما میرسونیم پلیس فدرال آمریکا FBI تأکید کرد که یک ایرانی آمریکایی که بیش از 10 روز پیش به ضرب گروهی پلیس در ایالت ورجینیا زخمی شده بود به بیمارستان در بیمارستان جان خودرو اده است داده. به گفته FBI بیژن قیصر 25 ساله ساکن مکین ورجینیا روز دوشنبه 27 نوامبر در اثر زخمی تیراندازی درگذشت. پلیس آمریکا گفته که عصر روز 17 نوام خودروی جیپ اسپورت آقای قیصر را به زن دخالت او در یک واقعه تصادف و فرار از صحنه تعقیب کرده و در نهایت در فورتان در ناحیه فرفاکس تیراندازی صورت گرفته. بیچان قیصر فارغ تحصیل دانشگاه ویرجینیا کامالز در شرکت پدرش حسابدار بود. خانواده او در بیانیه گفتند که پلیس سه بار به سر او شلیک کرده. و او دچار زایه‌ی مغزی غیر قابل بازگشت شد. یک شاهد ماجرا به روزنامه واشنگتن پست گفت که دو مأمور پلیس را دیده که به خودرو جیب نزدیک شده و از فاصله نزدیک شلیک کرد. خانواده بیژن قیصر، او را شهروند نسل اولی زادی آمریکا با میراث ایرانی توصیف کردند که مخالف خشونت بوده و در جریان تعقیب و گریز پلیس سلاحی همراه خود نداشت. پرونده تیراندازی به آقای قیصر ابتدا در اختیار پلیس پارکهای آمریکا بود که مامورانش در این ماجرا دخیل بودند اما چند روز بعد برای حفظ بیطرفی به پلیس فدرال و همون FBI واگوزش شد. هزاران نفر از آفریقا برای رسیدن به اروپا جان خود را به خطر می‌اندازند. سرنوش برخی از آنها در بازارهای برد فروشی ختم می شود. اروپا باید راهی برای مهاجرت فراهم کند. نظر رئیس کمیسیون اتاد اروپا در گفتگو با دویچو بله. مسیر غیرقانونی و خطرناک برای رسیدن به خاک اروپا باید بسته شود. تا امروز ده هزار زن و مرد کوچک و بزرگ در رویای رسیدن به اروپا در اعماق دریای مدیترانه فرو رفتن. برای حل این مشکل چه راهایی وجود دارد که هم عملی باشد و هم انسانی این موضوع محور اصلی نشستی است که روز پنجشنبه 3 نوامبر در ابیجان برگزار می شود در پایتخت ساحل آچ. مقامات کشورهای اتحادیه اروپا با سران کشورهای آفریقایی به گفتگو خواهند نشست ماکس هوفمان از سوی دویچه وله در باری در این بار در بروکسل با ژان کلین یوکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به گفته گنشست آقای یونکر نخست به این خبر تکاننده اشاره می کند که برخی از کسانی که از روی درماندگی خانه و کاشانه خود را در آفریقا ترک کردهاند تا به سواحل اروپا برسند امروز در لیبی مانداند و مانند بردگان خرید فروش می شرن. رئیس کمیسیون اتحادی می اروپا می‌گوید اروپا نمی‌تواند بر وضعیت قلقاگی که در لیبی برای هزاران زن و مرد و کودک پیش آمده چشم ببندد. او می‌افزاید: من از این اندیشه شبها خواب راحت ندارم. وقتی میشنوم که انسان‌هایی در آرزوی زندگی بهتر به چنین جهنمی می می‌شوند. یک خبر از سوریه جنگ داخلی بهار عربی و پنجه‌های سیاه داعش در سوریه به بزرگترین بحران پناهجویی دنیا منجر شد. اکنون با نوید پایان جنگ، آوارگان سوری آرام آرام به کشورشان باز می‌گردند. سازمان‌های مرتبط با پناهندگان می‌گویند این ها را نه تشویق می‌کنند و نه تسهیل. بن علی یلدریم، وزیر ترکیه می‌گوید آنچه یگان‌های مدافع خلق وابسته به کوردهای پکاکا در گفتگوهای صلح سوریه نقش بگیرند، مسیر عبور پناهجویان سوری به اروپا را خواهد گشود. کمیساریای عالی پناهندگی در اردو میگوید به طور میانگین ماهانه هزار سوری به طور داوطلبانه به کشورشان باز میگردند. آماری که نسبت به اندازه این پناهجویان چندان قابل توجه نیست. در ابتدای ماه جولای در مرز جنوبی سوریه، آتش‌بس سنجانبه اردن، روسیه و آمریکا به مرحله اجرا درآمد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اردن میگوید ناپختگی است که اگر این آتش‌بس ایجاد مناطق امن در سوریه و تغییرات سیاسی را تنها عامل این بازگشت بدانیم. نماینده این سازمان ملحق شدن به خانواده و اوضاع نامطلوب اقتصادی و اجتماعی در کشورهای میزبان را مشوقهای اصلی مراجعهات میدانند. های مرتبط با پناهجویان میگویند این بازگشت ها را نه تشویق می‌کنند و نه تسهیل. برای رسیدن از این پناهندگان در بازگشت شناختن شهر، خانه و کاشانه هایشان دشوار است. صقادی که با خود به خانه می‌آورند جراحاتی است روانی، زندگی در پلا تکتیفی. سرخوردگی و فقر خواهد بود. خبر بعدی از آلمان. شهردار طرفدار مهاجرت در آلمان چاقو خورد. شهردار منطقه‌ای در غرب آلمان که به عنوان سیاستمدار طرفدار مهاجرت شناخته می شود هدف حمله با چاقو قرار گرفت. آندر ناس از حزب دموکرات مسیحی روز دوشنبه 27 نوامبر در یک کبابی در شهر آلتنا رفته بود که شخصی با چاقو به او حمله کرد و گردنش را هدف قرار داد. آقای هولشتاین بعد از حمله به بی بیمارستان منتقل شد و وضعیت او رو به بهبود است. فرد مهاجم بازداشت شده. شهر آلتنا در ایالت نوردداین وسترلاین به دلیل اینکه بیش از سهمیه تاین شده پناهجو پذیرفته شناخته می شود رئیس دولت محلی میگوید که مقامات امنیتی بر این باورند که حمله به شهردار با انگیزی سیاسی انجام شده. شاهدان به رسانه‌های آلمان گفتند که مهاجم در زمان حمله با داد و فریاد از سیاست های شهردار در قبال پناهجویان انتقاد می‌کرد. آنگرامرکر صدراعظم آلمان و همهزبی شهردار در توییتی نوشته از حمله با چاقو به شهردار خشبگینم و از اینکه او می‌تواند به خانواده‌اش برگردد خوشحالم. از کسانی که به او کمک کردن تشکر میکنم و آخرین خبر از سوئد، جیمی اکسون میگوید مهاجرانی که نیاز به حفاظت ندارند باید اخراج شوند. رهبر حزب دموکرات های سوئد، جیمی اکسون در برنامه اجنا در تلویزیون ملی سوئد گفته که اداره مهاجرت باید افرادی را که نیاز به حفاظت ندارند دوباره به کشورهایشان بفرستد جیم اکسون در این مصاحبه تلویزیونی گفت اداره کل امور مهاجرت نشان داده که به مقیاس خیلی بزرگ یک نهاد اکوتیوستی است منظور رهبر حزب دموکرات‌های سوئد این است که اداره مهاجرت بیشتر به عنوان یک نهاد فعال حقوق پناهندگان عمل میکند تا یک اداره رسمی که باید مسئولیت رسیدگی به پرونده های پناهجویی را مبتنی بر قوانین و سیاستهای مهاجرتی کشور بر عهده داشته باشد او در ادامه افزود که ممکن است مهمترین اقدامی اقدام در راستای سیاستهای همپیوستگی اجتماعی این باشد که همه افرادی که نیاز به حفاظت ندارند نباید اینجا بمانند و هرچه زودتر اخراج شود مجری برنامه از جیمی اکسون پرسید در حال حاضر هزار تن در سوئد داره اقامت موقت هستند بسیاری از این افراد با باید برای تمدید اقامتشان پس از یک سال دوباره درخواست بدهند. با سیاست هایی که حزب دموکرات های سوئد دارند ممکن است این افراد تمدید شود جیمی اکسون پاسخ داد بستگی به این دارد که آیا افراد مورد نظر نیاز به حفاظت دارند یا خیر؟ می میتوان پرونده ها را مورد ارزیابی قرار داد من فکر می کنم در حال حاضر ارزیابی ها بسیار سخاوتمندانه صورت می گیرد لباتون خندون دلاتون شاد تندرستیتون پایدار و سفره هاتون پرنعم عزیزم